بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا ببین که در این غم چنا خوشم بی تو شب از فراغتون این عالم ای پری رخصار چو روز گردد گویی در آتشم بی تو دمی تو شربت وسلم نداده ای جانا همیشه زهر فراغت چه شم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز درکشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم می جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو